حکایت، عبدالقادر گیلانی را رحمت الله علیه دیدن در حرم کعبه روی بر حسبان حاقه همین گفت، ای خداوند ببخشای، وگر هر آینه مستوجب به عقوبتم در روز قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان، شرم سال نشوم روی بر خاک عجز میگویم هر سهرگه که باد میآید ای که هرگز فراموشت نکنم هیچت از بنده یاد میآید